خوشخبر باشی ای نسیم شمال که به ما میرسد زمان وصال قصت الاش بلنفسام الاا فسمت ها و نا لسان القا مال لس سلمى و من بزی سلمی این جیران و و کیف الحال Asata dar wa ba'da afiyatin fas'alu halaha an al-atlal fi jamal al-kamalin al-tamuna sarrafa Allahu an ka ayna kamad ya مرحبا al-hima hama kalla marhaban marhaban ta'al از حریفان و جام مالا مال آمال. سایف کند حالی آشبه هج تا چه بازند شبروان خیال ترک ما سوی کس نمی نگرد آخ از این کبریا و جا و جلال حافظا عشق و صابری تا چند ناله عاشقان خوش است به